اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین از والسلام و سلام و علی نبینا نا و خدمت عزیزان دانشجو خودم عرض سلام دارم روز به خیر عرض میکنم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و الله که به لطفه الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید و خدمت شما امروز را هم که تولد جواد و مفرزند فرزند برومند امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هستش تبدیل ارزم کنید انشاءالله که به دعای خیر اون دو امام مزین باشید بریم سر کار خودم ما در نموزجه کلام خبری که برای چه اقرازی آورده میشه در نموزجه بودیم سه تا از نموزجه ها رو خدمت شما عرض کردیم نموزج چهارا قال ابو فراس همدانی گفت ابو فراس همدانی گفته یه ابو فراس همدانی پسر عموی صیف سیف الدوله است شاهر شجاع و معاصر با آقای متنبی است قال ابو فراس همدانی و مکارمی عدد النجومه نجومه و منزلی مأول کرامه و منزل منزلالعزیافی مکارم جمع مکرم است یعنی فضیلت و مکارمی عدد النجوم یعنی فضائل من به تعداد ستارگان آسمان است یعنی فراوان و منزلی و خانه من مأول کرام محل و پناهگاه اسیلان و بزرگان است کرام جمع کریم یعنی آدم های با نژاد اصیل، بزرگان و خانه من محل بزرگان است و منزل الضیاف و محل میهمانان است یعنی من خودم کریمم میهمانان در خانه هم شد خب سه تا جمله اسمیه مبتدا خبر آورد قصدش چی بوده از این؟ قصدش قطعا فخره می‌خواد به تعداد فضائل خودش و جایگاه خودش فخر بفروشه قام اظهار فخر نگاه کنید و این نبا فراسن این نبا یورید و, و این به مقام به مکارمه هی و شمائله شمائل یعنی خصوصیات خلق و خوب میخواد به اینها افتخار کند بریم سر بعدی و قال عبو خود حالا متنبی چی میگه میگه و ما هاون للجمیله به فائلید ولا کل فعال له به ما کل حاون هاون اسم فائله مثل قازن از هوی یهوا هوی یحوا یعنی احب یوهب دوست دارد هاون یعنی محب ما کل حاون للجمیل این لام لام تقویته یعنی الجمیل مفعول حاولهن نیست هر کسی که دوستدار خوبی است به فائل بابای زائد است یعنی فائلا انجام دهنده آن هر کسی که دم از کار خوب میزنه انجام دهنده آن نیست حرف میزنه ممکن نتونه عمل کنه ولا کل فعالن لهو به متملی و هر کسی هم که فعال است لهو اون لام تقویوعیت یعنی ایاهو میخوره به جمعیت و هر کسی هم که خیلی کارهای خوب رو ریخته سرش و میخواد انجام بده فعال است نسبت به کارهای خوب دلیل بر اینکه تمام کننده ی آنها باشه نیست پس اگر دیدید یه نفر دم میزنه از کار خوب دلیل نیست که بتونه انجام بده از اون طرف یعنی یک نفر ده تا کارو خوب رو شروع کرد و موهی این اینم دلیل نیست به توده تموم کنه درست شد ولا کل فعال له به متممی بابای زائد است بر سر به متممی خب این شعر رو من توضیح دادم شما فهمیدید خبره. الخبر این رو به ما بفهمونه که بین حرف و عمل ملازمت نیست ممکنه حرف بزنه عمل نکنه و بین کسی که خیلی کار دیخته سرش باز ملازمت نیست که بتونه تمام کنه ممکنه نتونه نگاه کنید پنج افادتون مخاطبه الحکم اللذی تزمن هل کلام فا این نعود تیب یورید و یو میخواد بیان کنه برای مخاطبین خودش مایراه و آنچه که میبیند فی بعض الناس در برخی از مردم اون چه که در برخی از مردم می‌بینه میخواد بیان کنه چیه مند تقصیر یا اعمال الخیر این که اونها بگید کوتاهی می‌کنند در انجام کار خیر حرف میزنن عمل نمیکنن یا زیاد کار خیر بیخته سرشون نمیتونن انجام بدن همه رو خراب میکنن اینو رو مخواسته به ما بفهمید. خب بریم سر بعدی و قال عیزند ایزن یعنی آقای متنبی گفته یرسی اخت سیف الدولته داشته مرسیه میکرده خواهر سیف دوله خواهر سیف الدوله مرده بوده برای او رسام گفته میگه قدرت یا موتو ای مرگ خیانت کردی کم افنیت من عددن به من عصبته میکم خبریه هست چه بسیار فانی ساختی از تعداد انسان ها من عددن تمیز کمه یعنی کم عددن افنه چه تعداد رو تو فانی ساختی به من این من یعنی خواهر سیفت با کسی که اصب تهو بهش اصابت کردی و او رو میران دی. ای مرگ تو خیانت کردی تو یه نفر رو نکشتی چه تعداد زیادی رو فانی کردی با این کسی که باش برخورد کردی و کم از کت من لجبن باز بوده به من اصب تا که به غری نقرد از کت یعنی ساکت کردی تو با ساکت کردن این خواهر و سیف یه نفر رو ساکت نکردی کم من لجبن لجب یعنی سر و صدا چه سر و صداهای زیادی رو ساکت کردی با ساکت کردن به خواهر سفون یعنی چی؟ یعنی ما نگاه می پشت در خونه چقدر آدم می آممدن قوواجشون رو میگفتن سر و صدا میکردن بده, بده بده بده؟ تو این رو که ساکت کردی به هیچ خبری اصلا پشت در خونهش هیچ یه نفران میگهید. تو این رو که از دنیا بردی اینو نبردی صدها نفر دیگه چه تعداد دیگر از دنیا بردی؟ که اونها از دست این زندگی خودشونو اداره می قدرت یا موتو کم افنیت من عددن به من اصابت و کم اسکت من لجبن به من اصابت این کم افنیتای پش میگن کم خبریه یعنی چه تعداد زیادی چه سر و صداهای زیادی رو ساکت کرد و این جمله کم افنیته پش میگن استیناف بیانی علت اینه که گفته قدرت. گفته خیانت کردی ای مرگ. انگار اون گفته چرا چطور گفته به دلیل اینکه یه نفر رو که نکشتی یه تعداد کشتی یه صدا رو که ساکت نکردی صداهای زیادی رو ساکت کردی با این کسی که از دنیا بردی کب خب معلوم است داشته مرسیه میگفته اظهار حزن و اندوه میکرده یعنی در واقع این شعر با قم و اندوه خانده میشه که خیانت کردیم هر کدام تا یا موت کم افنیت من عدد به من عصب تا و کم اسکت من لجبی خوب اینم فهمیدیم پس بنابراین شما خوب دقت میکنید دیگه که ما در واقع داریم وقتی اینا رو می‌گوینیم برای شما فواید متون نظم و و خیلی چیزهای دیگر رو میگیم که قابلیت استفاده داشته رو شد گرچه اونی که از شما طالبیم و میخوایم و در امتحان ازش بحث داریم همون مباحث بلاغی ماست فهمونه ولی نکات اصلی رو شما نباید فهم شعر فهم لغت خیلی مهم خب اظهار اصاب الگست اظهار تأصف و اندوه هفت رو نگاه کنید میگه قال ابو اطاهیه آقای ابو اطاهیه گفته یرسی ولده و علیه. یه پسری داشته به اسم علی از دنیا رفته او رو داشته مرثیه میکرده. میگه وکی تو که یا علی یا به دم عینی گریستم بر تو ای عدی. با اشک چشم با اشک خود بر چشمم بر تو گریستم. فما اغن بکا و علی شیع شیعن شده شیع فما اغن البکا البکا یعنی بکای یعنی این گریه این گریه من فایده ای نکرد بر تو هیچ چه سودی کرد؟ هیچ. میگه من با چشم خود بر تو گریستم اما این گریه من هیچ فایده برای تو نداشت نه تو رو زنده کرد نه تو رو به من برگردوند هیچ فما اخنر بوکا و علایشی بعد میگه چی و کانت فی حیاتک لی ازاتون اضات جمع ازه یعنی راز مستر دیگرش وعظه که عزتون مثل سیختون با سیست نقطه قاف یعنی اطمینان اون تا عوض از واو میاد درست شد مثل ادتون یعنی وعده دادن مستر دیگرش الوعد اینم مستر دیگرش الوعد این نصیحت میگه کانت لی کانت فی حیاته که لی ازتون در موقعی که تو زنده بودی برای من معظهایی در زنده بودن تو بود تو که زنده بودی من پ درسهای زیادی بهم می رسید. چه پ درسی تو رو نگاه می کردمم میفهمیدم من تنها نیستم تو رو نگاه میکردم میم خدا چه لطفی به من کرده به تو رو داده تو رو نگاه می کردمم زحمت به برات تو انشاالله بعدا نتیجه میدی اینا پ درزار بود که من تو وقتی زنده بودی از زنده بودن تو میافدن. اما و انت الیوم او از اومن که هینا. اما امروز که تو نیستی مردی او از اومن که تو واعظتر تر هستی از خودت اون زمانی که زنده بودی. توی مرده بیشتر برای من نصیحت داری از توی زنده. چرا چون میفهمم این دنیا ارزش نداره. نمیشه به چیزی دل بست هرچه هست دست خداست خدا بخواهد هرچه را میتواند بدهد هرچه را میتواند بگیرد پس تو الان نصیحت بیشتری خب این دو تا شعر داره به اون پسری که از دنیا رفته میگه نمیخواد که به اون فایده الخبر بده یا نمیخواد بگی که پسرتو بدون من میدونم اینا رو نه نیست بلکه باز اظهار حزن و تاسف است نسبت به از دست دادن بچش، بلکه از اظهار الحزن و تحسر بلکه عسا الا فقد بلده بل از دست دادن پادشاهش حشتو نگاه کنید این شعر مال یک شاعری است که تو سن 80 سالگی بوده وارد بر خلیفه شد خلیفه به او سلام کرد این پیر بود هشتاد سالش بود متوجه نشد بهش گفتن که آقا خلیفه به تو سلام کرد تو جواب ندادی اوز را این شعر رو میگه ان از نه از سمانین یعنی این هشتاد سالگی حالف لام این هشتاد سالگیه بعد این و بلغتها جمله معترض از داخل پرانتز دعاست یعنی انشاءالله تو هم بهش برسی که تو هم هشتاد سالشی به اون خلیفه میگه این قد احوجت خبر این است این هشتاد سالگی که الله تو هم بهش برسی قد احوجت سمعی الا ترجمان به یقین قد احوجت محتاج کرده از گوش من رو الى ترجمان به دیرماج ترجمان یعنی یه نفری بغل کار سمعه کنه بغل گوش انسان کرد یعنی اون کسی کس گوشش سنگینه میشسته یه نفر که یه چیزی میگفته این تو گوش اون بلند میگفته میگه مثلا حالت خوبه میگه سلامون عریقا اینطوری میگفته میگه به شما بدن یعنی اون کسی که ترجمان میکنه کار سمعاک رو انجام میده برای این. میگه این هشتاد سالگی که تو هم شالله بهش برسیم محتاج کرده گوش من رو به ترجمه خوب این شهر واسه چی به اون خلیفه گفته داشت اصفهانو صرف میکرد دیگوت باو چکه تو گوش اون سنگین شده هشتاد سالگی دیگه ما رو محتاج کرده که خیلی صداها رو نمیشنویم تا یکی تو گوشمون بگیم. این واسه بگه بگیم بیاره ولی اینکه که من ضعیفم و گوشم نمیشنوه زنگیم. اظهار و ضعف ول عجز نسبت به پیری. نه نگاه کن. قال عبول علا المردی. عبول علای مردی این شاعر نابینا اینطور میگه. ولی من تقن. اینجا منطق به معنای سخنگفتن نیست زبان نیست منطق اینجا به معنی عقله دلیلشم بعدش میگه ولی منطقون من عقلی دارم خدا به من عقلی داده لم یرزه لی کن همنزلی لم یرزه راضی نیست لی برای من کن همنزلی بلندای این انتهای این جایگاه و منزلی که دارم چی میگه؟ میگه خدا یه عقلی به من داده آه. یه استعدادی به من داده درسته من به این جایگاه بلند رسیدم که همه میگن عبال علا عبال علا علا. ولی عقل من این جایگاه رو نمیبزند روح من از این جایگاه بالاتره ولی منزل و ولی منطقه لم یرزلی این صفت منطقه کن همان زید. این علا اننی یعنی ولحق و علا اننی این علا اننی علای استدراکیه فبر مبتده محضوفه میگه واقعا روح تو راضی به این جایگاهت نیست درستم هست اینکه این جایگاه رو برا تو نپسنده که بله ولحق حقینه حقیقت اینه الا اندنی بین از سما نازلو حق اینه که من بین اون دو ستاره آسمان جایگاه من اینقدر رفیع المنزله هستم بلند منزله هستم حق است که جایگاه من در ما بین آن دو ستاره آسمان است خوب این چی بوده؟ داشته افتخار میکرده دیگه به عقل خودش به روح بلند خودش داشته هست نگاه کنید میگه الافتخار بله عقل و لسان بس اینجا منطق به لسان نیست یعنی روح بلند عقل و فهم بالا بلست شد گرچه منطق به معنای لسان و زبان همه این اینجا نیست پایین نگاه کنید میگه از سماکان نجمان نیرانه دو ستاره پرنور یقالو لعهده ما العزل وللاخره الرامه به یکیشون میگن بیسلاح اعزل به یکی میگن رامه نیزه به دست یقولو ان لهو عقلا و لسانن نه ان اهو عقلا و روحن زبان اینجا نیست جعله و یستسقه رو المنزلت هو النتی این عقل و روح او قرار داده او رو که کوچک می شمارد این منزله و جایگاه بلندی که او دارست بعد بگه علا انها حق است که این منزلت علا انها لرفعتها تشت و مابرین از انگار که او منزلتش در ما این دو ستاره از اون. منزلت بلندی ده. تمام شد بعدی رو ببینید. ده. قال ابراهیم ابن المهدی یو خاطب المعمون ابراهیم ابن مهدی مورد خطاب قرار داده معمون پایین نگاه کنید ابراهیم ابن المهدیه هو ام المعمون ام عم عموی معمون عباسی بوده و اخو حاروم رشید و داداش هارون رشید بود کان وافر الفضل زیر العدب فضل زیادی داشته ادب فراوانی داشته قزیر لم یورفی اولاد الخلفائه افسح ها لسانن ولا احسنمن ها شعرن لم یورفی اولاد الخلفائه دیده نشده در اولاد خلفائه خلیف در اصل افصح منحه لسانن و, اح و احسن و شعرن کسی که فصیحتر از او باشه و زیباتر از او شعر بگه دیده نشد شاعر بوده و تو بین زادگان خلفای از همه بالاتر لیمियोग्राफी اولاد الخلفاء افصح منحه لسانن و احسن من شعر بود یعنه او به خلافت به خلافت برای او بیعت گرفته شده در بغداد سند اسنتین و معتین و تا سر من رعا و در سامر را سر مرده درست شد سند عربین سند معتین و عربین و سال دوی حالا نخوندیم که یه مقدار شما نسبت به دراعت مسلت بشه ببینیم ابراهیم ابن مهدی چه میگه درست شو فارسی که می نویسید من نمیتونم بخونم توی این نرم افزار من به هم میریزه درست شو من الان نفهمیدم که چی میگی العزل ولق عزل چی شد استاد نمیدونم کجا رو داری میی yeah. خب بگذری قال ابراهیم ابن المهدی ابراهیم ابن محدی یخاطب المعمون مورد کتاب قرار داده معمونه این بدونید این ابراهیم ابن مهدی توتعه کرد بر علیه معمون یعنی میخواستی یه جوری با قول خودمون معمون رو با توتعه که داشته سقوط بده یعنی فتنه کرده بوده بر علیه معمون توتعه چیده بوده مأمون هم گرفته بوده انداخته بذاتش زندان خب کسی اگر بخواهد توتعه ای بر علیه شخصی که حاکمه بکنه اونها زیر بار این توطئه نمی رفتن. اعدام میکرد نه اینکه بودهتش زنده حالا اون برگشته به معمون اینطوری میگه یه برادر زاده خودش که خلیفه بوده میگه اعتی تو جرمن شنیه یعنی من انجام دادم اعتی تو من شنی هست شنی یعنی زشت من گناه زشتی مرتکف شدم و انتا لعفه اهلو و تو هم برای بخششو لطف کردن اهلی یعنی تو هم بزرگزادهی میتونی بخشش کنی گفته ما یه غلطی کردیم خوب قبول داریم تو هم آدم بزرگی هستی میتونی شطر دیدی ندیدی کنی درست شد و عدت اهلون للاف یعنی نسبت به گذشتن از بعد میگه فا عفوت اگر اومدی و گذشتی فمنن یعنی فعف و کمنن. اگر گذشتی خوب منت گذشتی به گردار اگر اومدی و گذشت کردی پس ملت گذشتی و این قتل تا اگر اومدی ما رو به خاطر خیانتمون کشتی و این قتل تا فعدلون یعنی فقطلوکه عدلون خبر مبتده محظوفه بس فمنون یعنی فعفوکه منون اینجا فقطلوکه عدلون پس اگر هم بکنی حق کردی میگه میگه ما یه خریعتی کردیم تو هم بزرکواری میتونی شطر دیدی ندیدی کنی تا شایسته اینی حالا اگر اومدی و ما رو بخشیدی و لطف کردی دستت درد نکنه لطف کردی به اگر هم اومدی و ما رو عدب کردی و اعدام کردی کار بدی نکردی حقمون بوده عدو این این جملات رو که گفته برای چی میگفته؟ اینکه د اونو به دست بیاره دیگه مثل کسی که یه کار خطایی کرده به یک میگه حالا ما یه خطایی کردیم دیگه تو هم بزرگواری ببخش حالا نبخشی هم اب نداره محبته اون مجبور میشه که ببخشه درست شد. چه توشه استرهام و استرهام و استعتاف خب مشخص تمام شد دیگه چیز جدیدی هم نداریم و درسمون به پایان رسید بریم درس بعدی ها که میخوایم انواع خبر رو برای شما بحث کنیم یک دقیقه بهتون استراحت میدم که اون مطالب قبل رو دستبندی کنید و بفهمید شد مطلب بعد رو شروع کنم که درس جدیده یک ج خب گوش کنید ما کلام خبری رو میخوایم الان از لحاظ کلام خبری رو میخواییم الان از لحاظ ساختار ظاهریش تقسیم کنیم از لحاظ ساختار ظاهریش با توجه به حال مخاطب و چی گفتیم؟ تقسیم کلام خبری با توجه به حال مخاطب از لحاظ شکل ظاهری خب کلام خبری رو شما فعیده چه چیه برای شو گفتی بهتون تعریف کردیم این ای شکل ظاهریش چجوری باشه چه چیزهایی داشته باشه و این شکل ظاهری این ای شکل ظاهری با توجه با حال مخاطب الف به جیم سه نفر مخاطبا حالات مختلف دارد آیا فرق میکنه یا نه؟ بله حالا یه مثال بزنم زیدان قائمون زید استاد است این کلام خبری هست یا نیست؟ بله زیدان قائم. حالا اگه بگم ان زیدان قائمون چیه؟ همون دیگه چه فرق میکنه؟ اگر بگم والله این نزیدن قادم والله این نزیدن قادم بازم بگیر فرقی نکرد معناش زید ایستاده خب چه فرقی هست درست شد چه فرقی هست یعنی من مثلا به این آقای زید بگم زیدون قائمون یا بگم ان زیدان قائمون یا بگم والله ان زیدان قائمون چی بهش بگم تو این مخاطب منه درست شد فهمیدید چی شد انواع کلام خبری با توجه به حال مخاطب بحث ماست نگاه کنید ازروب الخبر ازروب جمع ضربه زرب یعنی نوع پس این تیتر بحث ما میشه ازروب الخبر یعنی چی؟ یعنی انواع الخبر انواع کلام خبر این دست ساده است و من از بیرون برای شما میگم بعد میخونم میبینید خیلی ساده است یعنی خود شما بلدید اصلا دارید این کار رو اجرا میکنید دارید همین کار رو با حرف زدن با همدیگه اجرا می کنید نگاه کنید اگر اگر متکلم اگر متکلم مخاطب خود را نسبت به مضمون کلام خبری نسبت به مضمون کلام خبری خالی و ذهن خالی و ذهن یعنی بدون اینکه او شک داشته باشد یا منکر باشد فرض کند در این صورت کلام خبری را به شکل ابتدایی یعنی بدون هر گونه عدوات تحکید یعنی بدون هر گونه عدوات تأکید،, یعنی تأکید می شد؟ چی گفتیم؟ گفتیم اگه متکلم مخاطب خودشو نسبت به مضمون کلام خالی از ذهن فرض کنیم خالی از ذهن یعنی چی؟ یعنی شک نداره نسبت به این چیزی که من میگم انکارم نداره دوست شد ما دقیقه افش میبینیم دیگه نه شک داره نه انکار اگر چنین اگر چنین فرضش بکنه کلام رو ابتدایی میاره کلام رو ابتدایی میاره یعنی بدون هر گونه عدوات تک الان خود من الان همین تعریفی که کردم کلام خبری بود دیگه من شماها ها رو نسبت به کلام خودم چی فرض کردم خالی و زهن خودم اینا به من شک دارن که بلدم یا بلد نیستم نمانکرند اینا اینام آدم یاد بگیرند گوشاشونو باز کردن یاد بگیرند بلدم پس بنابر این من کلام خودم رو بدون هر گونه عدوات تأکیدی به شما گفتم گدام هرگاه گاه متکلم مخاطب خود را نسبت به مضمون کلام خالی و ذهن فرض کند یعنی منکر و اهل شک نداند کلام خود را ابتدایی می آورد خالی از هر گونه عدوات تک. ایش. نبفتم بپیر به پیغمبر اینطوری پس مخاطب خالی و ذهن کلام خبری ابتدایی. کلام خبری ابتدایی. خالی و ذهن هم گفتیم یعنی شک نداره انکار نداره ابتدایی هم گفتیم یعنی عدوات توکید عدوات تحکید مثل نه، مثل قسم مثل لام ابتداییت مثل قد اینجور چیزها نداره یک دو چنانچه متکلم مخاطب خود را نسبت به مضمون کلام شاک شاک یا سائل و یا متردد فرض کند در این صورت کلام خود را به شکل طلبی میآورد و کلام طلبی کلامی است که با عدات تأکید استحسانی، استحسانی یعنی استهبابی آورده شده است خوب ساده شد الان من مخاطب خودم رو احساس میکنم نسبت به حرف من شک داره یا سوال داره این شاک و سائل و متردد سه تا لفظیه که مترادفه ها اینجا نه سه چیز نیسته گایی میگه شاک گوی میگن سائل گایی میگه متردد من احساس میکنم مخاطب من شاک سائل متردده ازش سوال نمیکنم قیافش داره میگه بعد کلام خودم رو برای او طلبی تنظیم میکنم طلبی یعنی چی؟ یعنی همراه با عداد تأکید میارم حالا عداد تحکید واجبه؟ نه مستحبه خوبه استحصانیه بهتر اینه که بیارم این نعیه بردم نداره. اشکال ولی بهتره که بیارم این مال این. سه هرگاه متکلم مخاطب خود را نسبت به مضمون کلام هرگاه متکلم مخاطب خود را نسبت به مضمون کلام منکر فرض کند منکر فرض کند این از غیافش میبینه که این حرفی که میخواد بزنه اون قبول نداره منکر فرض کند در این صورت واجب است کلام خود را به شکل انکاری بیاورد در این صورت واجب است کلام خود را به شکل انکاری بیاورد و کلام انکاری کلامی است که همراه با عدوات تأکید همراه با عدوات تأکید وجوبی است. تبصره هرچقدر مخاطب نسبت به مضمون کلام انکار بیشتری در و فرض شود بر شدت و تعداد عدوات تاکید افزوده می شود بر شدت و تعداد عدوات تأکید اضافه می شود پس خالی و افتدایی شاک سائل متردد تلبی منکر انکاری هر چقدر انکار بیشتر شدت عدوات انکار و تعدادش بیشتر این درس امروز مست و شما رو این از صد این رو اجرا میکنید نیاد می‌بینید. حالا شما نگاه باید یه اثار میزنم بیایی برای شما اتفاق افتاده یا نم فرض کنید شما یه حیعتی دارید که حیعت یه انسان نیست که میتونه مثلا فرض فرد یه کیفی بخارید با اول خودمون از در یه مغازه وارد میشین تو سلام میکنید سلامون علیکم میگه سلامون علیکم میگه را ببخشید اون کیف چنده اون کیافه شما نباید کنید میبینه خرید خریدنی کیف هستی میخوره بهت میگه اون کیف چنده میارید پایین میارید پایین میگه قابل شما رو نداره صد هزار بدون تک چون شما سائل فرض نمی کنه شاک فرض نمی کنه متردد فرض, فرض نمی کنه شما فریدار فرض نمی کنه خالی ذهن نسبت به قیمت داره. میگه قابل شما رو نداره تعارف نکنه صد هزار شما گهد برمیگهد ببخشید بر یعنی یه ذره پرفت شده آقا گفتی صد هزارتون هم میبینه شما شک کردی سو... سوال کردی یه نگاه کردی برای سوال برمیگرده میگه که بله بله بله تحکیل میکنی گفتم صد هزارتون بعد شما برگردید بگه آقا چی میگه صد هزارتون ما خودم میفهمم کجا صد هزار ما جای دیگه خیلی ارزان برمیگرده از اونجا به بعد چی میگه میگه به پیر به پیغمبر ما جایی دیگه ارزان تر میدید باور کن ارزان تر میدیم وای رو فاکتورشو بهت نشون بده ها چون شو عمر هر چقدر تو انگار بیشتر این کیم زندگی میکنه حالا نشده شما یه نفری اومده باشه مثلا پر جلو شما بگه آها به جان مادرم به خدا قسم من پشت سرت حرف نزدم این چی فکر کرده بوده در مورد تو فکر کرده بوده که تو مونقری میگه تو رفتی پشت سر من حرف زدی قبول نداری که اون پشت سر حرف نزده من با قسم و عهید من میگه آقا من که چیزی نگفتم اینکه من که چیزی نگفتم یعنی من خالی و ذهنم تو من رو منکر فرض کردی داری برای هم قسم می ببینید ما داریم همین کار رو نکنید چرا از در دوکون که وارد شدی تو گفت آقا این کیف جنده نگفتش که سب کن فاکتورشو به شما نشون بدم ما از همه جا عرضونتر می هیچ کجا بهتر از اینجا پیدا نمی کنید. صد هزار تومن دازه قیمت گذاشته شد هیچ اصلا یه رفع اینطوری نمی ولی یه ذره شک کردی اولین بار برمیگرده میگه که باور کن ما از جای دیگه هرزان تر میدید. یا میگه باور کن قیمت قبلمونه این ها تحکیده درست شد حالا نگاه کنیم یه تفسیره یه تفسیره بگم منظور از ادوات تاکید در اینجا عدوات تأکیدی است که کلام را تکید میکند کلام را تأکید میکند نه مفردات کلام را که اصل کلام هست. مثل ان عنه قد مثل لام ابتداییت نون تأکید اینا ولی مثلا بگیم که فرض کنید که جاعت تلامیزت و کلهم این کلهم داره تاکید میکنه ات این نه یعنی جاعت تلامیزت و کلهم کلام اتداریه اگه گفتیم قد جاعت تلامیزت و کلام تلبیه عدات تاکید. داره پس منظور از تاکید عدوات ادواتی است که کلام نتحکید میده حال اگر این رو فهمیدید بیاید توی نوابید القواند من مخاطب برای مخاطب سلاس و حالات هم. سه حالت قابل تصور یک انگکونه خالی از ذهن خالی از ذهن من الحکم نسبت به مضمون کلام نسبت به اینکه که من میخوام بگم کلام خبری حکم خالی از ذهن و زهن. وفی هازه الهالی و غایلهی هلخبرون در این صورت خبر بر او انقام شه آورده خالیان به خالی هم من عدوات تو که ده هیچ عدوات تنکی اصلا نیاز نیست اگه بیاری فلطه و یو سم ماهاز از ضرب و منال و این نوع از خبر رو بهش میگن ابتدایی به. ان یکونم مترددند فر متردده در حکمه طالبان طالبان علیه سلیلن یده این فی عرفت چون متردده شاکه خب دوستم داره که به برسه که به فهمه دیگه م? نیکم شک کرده متردده بعضی موقعا میگن سا... ان یکونه متردده سائلن شاکن فیل حکم استرحاتشونه اینجا به کار بره طالبان چون شک داره سوال داره تردید داره طالب است که به یقین برسه و فی ذر حال و در این حالت یحسن و توکیی دووله خوبه که شما براشتون تکید کنید. یحسن و این یحسن رو یاد بگیره که من در استحسانی مستحبه به خوبه اما اگه نیاری هم اشکالی نداره کلام بلیغ نیست چیز خلاف بلاغت نیست ولی اگر آوردی تاکید کردی بلاغتش بالاتر. یحسان و توکید و چرا؟ لگه کنم نفسه تا کلامتو جا بگیره توی دل او. اون کسی که خالی و ذهن انگار ذهنش انگاه ذهنشو درشو باز کرد در ذهن بازه در گوشاش بازه شما میگید تطبه میره میشینه تو گوشش میره تو میشینه تو ذهنش از گوشش میره تو میشینه اونی که شاک جسائل متردده انگار یه پرده نازک توری کشیده یکم کم شک داره دیگه یه خوبه که شما یه تاکید بزنید اون پرده ها رو بزنه کنار بره بشینه حالا اگر یک زمانی هم نکنین اون پرده نازک مانع نیست میره اما بهترینه که شما با یه تاکید اون رو پس بزنید و فی ها یحسن و, و له های من نفسه و یوسن محاز از ضرب و تلبیه. این نوع از کلام خبری و این تلبی غیر از اون کلام ها هایی اسم اینجا اینجا کلام خبری است. نوعش به خاطر مخاطب شده تلبی چرا بهش گفتن طلبی چون شک سائل متردده طالب اینه که یقین رو بفهمه طالبن انیسه بلا نوع کلام خبریه تلبی نیست دار کلام هنوز ما بحثمون تو کلام خبری اینجا به دلیل اینکه مخاطب یک کمی شاخه کاش شده طالب اینه که حق بفهمه ما برایش تحکیت میکنیم بشکوتیم کلام تلب جیم یکون منکر اندخ اصلا منکر کلام شماست قبول نداریم و وفی هازه الهال یجبا ان یعکد الخبرو در این حال خوبه که شما کلام رو براش تاکید کنید یجبا ببینید یجبا یعنی واجبه یعنی اگه کار نکردی غلطه یجبا ان یعکد الخبرو به معکد او اکثره حالا یه عدد تحکید دو تا سه تا بسیگی داریم که چقدر این کار داری هر چقدر این کارش بیشتر شما تحکیدتون بگید بیشتر اله حسب این کاره انکاری که اونها داشتند قوتا و ضعفن به حسب انکار از جهت قوت و ضعف شما به عدوات تأکیدتون اضافه میکنید درست شو؟ به عدوات تأکیدتون چکار کار میکنید؟ اضافه میکنید و یو ماهاز از ضربا انکاری گند. این رو بهش میگن چی؟ انکاری این نوع کلام رو بهش میگن انکاری حالا نگاه کنید اون تفسیری که من گفتم رو میگه لتوکیدن خبر ادواتون کثیره برای تاکید خبر ادوات زیادی هست منها ان ون القسم قسم والله والعصر ان الانسان لفی خست لام الابتدا گای اوقات که میاد میره سر خبر بهش میگن لام و زحلقه. مثل نل الانسانه نفی خواست لام تحکید دیم اول کلام باشه بهش میگن لام ابتده مثل یوسف و اخوهو احب و اله هبی نام لام ابتده نونا ات توکید دوتا نون تحکید سغیله و خفیفه احروف و تنبیه حروف تنبیه مثل الا این هم هم ها انا به ذکر الله تطمئن داره بود غروف تنبیل وله غروف زیاده حرف زیاده مثل بای زایده بر سر خبر مای مشبهتون تون لیسه خبر لیسه لیسه زیدان بقاید خب این تأکیده داره دیگه بای زایده است نگفتیم دیست زیدون قائمت ملاهو به غافلن اما تعلمون ملاهو به یعنی چی؟ یعنی خدا غافل نیست اما تعلمون از آن... اما تعملون از آن چی که شما هم شده و روح مثل با می سمه البته قد بر سر فیل موازی برای تحقیق. گاه اوقات بر سر فیل مزارم برای تحقیق می اون باید ما از عبارت بفهم امای شرطیه مثل امالیتی مفلا تقهر امالیتی مفلا تقهر یعنی هر طور شده یتیم رو مران یعنی هر طور شده و تحکیل دیگه مثل اینو هر طور شده بیاد، بیان بلانی تحکیل کرد شما بیان درست شما اینها بعضی هاشه مثلا جمله اسمیه جمله اسمیه اگر کلام اگر کلام به قصد تاکید آورده شده باشد اگر کلام به قصد تأکید آورده شده باشد مثلا این نداره ان نداره آلام ابتداییت داره اگر کلام به قصد تأکید آورده شده باشد جمله اسمیه هم که دلالت بر ثبوت می کرد، یکی از عدوات تأکید محسوب می شود یکی از ادوات تحکید محسوب می شود خب این درست فهمیدیم چیز خاصی نداشت حالا دیگه ما بقیه باید مثال بسید درمین باید یه مثال براتون بزنم تو سور یاسین هم شما اینو رو ببینید کاش حضرت عیسی دو نفر رو فرستاد به شهر انتاکیه انطاکیه تو این باغون خودمون ترکیه فعلی بود اینجا فرستاد برای اینکه مردم رو تبلیغ کنه این دو نفر رفتن خب اول که رسیدن تو این شهر مردم اومدن دیدن دو تا غریبه اومدن وسط شهر واسه خب مردم نسبت به اینها که اینا چی کارن رسول خودان تاجرن چی ها نسبت به این خالی و زهر بودن مردم از اینها پرسیدن من تو شما کی هستید اینها بار اول به مردم چی گفتن گفتن نحن رسول رب بکن شلام ابدید. نحن و رسول و رب و, و رب مردم شنیدن که اینا میگن ما رسولان پروردگار شمایی کده چی؟ رسول پروردگار مایید این دفعه برگشتن دیدن اونا شک کردن با یه تأکید گفتن گفتن اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اِنَّا بله، ما رسول پروردگارشون درست شد؟ بله، درست شنیدید، اینطوری گفتن ما رسول پروردگارشون اونا این کار کردن، رسول چیه؟ شما مایید رسول پروردگار ما ما قبول انکار کرد. این دفعه که انکار کردن گفتن انا الیکم لم ارسلون انا و لام و جمعه اسمی گفتن انا الیکم لم یعنی چی یعنی ما به یقین صد درصد رسول پروردگار شد. با تاکید کفتن اونا این دفعه خیلی انکار کردن گفتن این انتم الله تکذبون ما انزل الله من منشه خدا هیچی نفرستاده رسولی نبوده شما دروغ میگید انکار کرد این ها گفتن ربنا یعلمو این ربنا یعلمو یعنی خدا میداند قسمه انگار گفتن غلا آ قرآن های ربنا یعلمو الا الیکم دم ربنا يعلم جمله قسم انان ان تقر لام لمرسلون تأکید، جمله اسمیه تاکید با این همه تاکید معادل اون که اونا این کار میکردن این هم سفت گفتن خدا میدونه به پیر به پیغمبر ما رسوله بی خود دارید این کارو میکنید همون اول که رفتن نگفتن ربنا يعلم و امنا و ربنا یعلم و لا اله الا درست این رو ما فهمیدیم حالا نگاه کنید حالا بیایید داخل کتاب دیگه راحت و دیگه, دیگه دیگه من هرچند باقاعده من مثال زدم براتون متحدد بقیه هم بخونم مثال شما سه سری مثال میبینید یعنی مثال یک و دو مال ابتدایی سه و چهار مال تلبی پنج و شیش و هفت مال انکاری چرا انکاری دوسته تا زده چون شدت انکار که زیادتر شده عدوات تأکیدم بگید بیشتر شده. شد شد اولین را نگاه کنید کتبم تو معاویه نوشته الا احد و اماله به یکی از کارگزارانش معاویه نامه نوشته به یکی از کارگزاران خودش و قاله این طور گفته گفته داشته درست سیاست میداده بهش از اون سیاست های هست. هم هست گفته لا ینبقی لنا ان نسوسا ناسه سیاستا و گفته شایسته نیست برای من که خلیفم و شما که کارگزاران منید برای ما اینکه اداره کنیم مردم رو به شکل شایسته نیست هممون یه جور رفتار کنیم گفته چطور؟ گفته نان ندین و جمیعن هممون نرم برخورد کنیم از من که خلیفم بگم جانم عمرم عزیزم شما هم همینطور لا ندین و اگه هممون جانم و عمرم بگیم فیم رح ان ناصف المعصیه فیم رح ان ناصف. مرح یعنی نشاد پس مردم نشاد پیدا میکنن در مخالفت برده. پر رو میشن اگه همه بگیم جونم و عمرم این باعث میشه که اونها پر رو میشن میان سرکول ما بالا فیم به هم یعنی و فیلم یعنی فیلم و خالفه یم یعنی ین شطر یعنی یتبختر متکبر میشن نشات پیدا میکنن در پردوم شن یتبختر این پردوم شن ولی دو جمعی ها و از طرف دیگر نمیشه هم من سخت بگیرم هم شما من بخوابونم تو گوششون شما هم بخوابونم همه از این پایین تا بالا بازگرد خشن می کنید. ده 82 جمع. اون چی میشه؟ ف نهملع الناس ف نهملن ناسه اون موقع ما حمل می کنیم. حمل علی یعنی وادار کردن. پس وادار می کنیم مردم رو به اینکه بیان به مهلکه ها. میان به جنگمون. یه انقلاب کنن، کودتا کنن. با ما برخورد کنیم. یعنی جونمون آزاد داریم، هر روز دارن. تو سرمون میکنم از اون بالا تا پایه باب پس بحمله کنیم داد شو ولان دو جمیعن فنحملن ناس علاله اون با ما آدم رو بادار میکنیم برای اینکه به جنگ ما بیان با چکار کنیم؟ گفت هممون جونم و عمرم نمیگیم هممونم بگید تو گوششون نمیقابونیم احمای تقسیم نمیدن ولیکن تکون و هم تل شدت ولی تو که زیر دست هستی وزیر هستی استاندار هستی تو ببرو برو ده برابر مالیات بگیر ده برابر خراج بگیر مصادره کن تو قرار خود تو بکن انتا تکونه لشدت و لگلزه تو صرف بگیر و فشن باش فشم خود چی میشه؟ از دست تو به قول خودمون تو مثلا چل درصد مالیات گرفتی بنجا درصد مالیات گرفت زمین هاشون رو مصادره کردی چی اینطوری کردی؟ خب میان از تو به من شکایت میکد هم اشتباه کرده من می‌نویسم. چی گفته ایست شما 40% ما یاد بگیرم از شما باید 25% چی گفته این باید مصادره کنن همه اموالتون. و پنی نه 50% درستش. طرف میاد پیش من من هم درستش ما اگه نه که نه اگه اومدم من اون بر برمیگرده خدا پدر این خلیفه رو بیاموزه اگه این نبود که اینا پس مارو ها و اکونا انه و من میشم لرحفت و الرحمن از شما به من شکایت میکنم منم درستش میکنم راستاریس حکومت میکنیم اینطوری خب این درس سیاست رو داشته میداده به اون زیر دست خودش اونو خالی و ذهن نسبت به این کلاس سیاست فرز کردن بیش کنه تحکیلی نداره لا و غیلاناانداسوس نه سیاست درواافت. لا ندین و جمعیت و یم راح نصر ف مزاره بعد ازفا در جواب نفی منصوب شده به عنو مثل رحن ناسو و نملا و یم و هم نصر و على المهالك ولكن تكون بل و اکونو انا لغف و الله الان نگاه کن تکونو انت این تاکید است برای اون انت داخل تکونو این انا هم تاکید است برای اون ضمیر داخل اکونه اینا تاکید مفرد کلامه تاکید به حساب نمیاد ما منظور تاکید جمله بود دو دو نگاه کنید قال ابو تمامه ده. آقای ابو تمام بود اوه یابو تمام میگه لا میگه ینال الفتا فتا یعنی انسان جوان شخصی ینال الفتا من عیشهی از زندگی خودش میگه نائل میشه جوانی از زندگی خیش یعنی ینال الفتا من عیشهی کل ما یرید یعنی کلشه این مفعول یعناله افتاده یعنی نائل میشه جوان از زندگی خود یعنی چی نائل میشه یعنی میرسه میرسه یه جوان از زندگی خودش یعنی به همه چی و خوبه نائل و خوبه جاهل و حالان جاهل. که جاهله کدور از که رو باید تشخیص دیم بگه گاهی اوقات نبایم کن یه نفری یک جوانی تو زندگیش همه چی داره خونه، ماشین، بیره، هم به همه چی رسیده و ما و حالان که کدور از کروات تشخیص نمیده خربیشش دانشمنده میگه این هست تو جامعه میبینی و یکت الفتا و یه جوون دیگر میبینیم یه کس دیگر رو دی. یعنی فقیره جدایی <تصفح> میکنه فی دهری در کل عمرش کل املش یک کفش درست نداشته، یه نون درست نخورده و هو عالمون بود، و حالا که عالمه. سرونه بلده، بلاغت بلده. او همه چی بلده، اما میچوره. میگه روزگار اینجوریه، گاهی اوقات می‌بینی یه کسی خرپیشش فازل همه چی داره، یه کسی هم می‌بینی عالم و معدبه چیزی نداره. فدید. بعد خود الله ابو تمام میگه میگه ولو كانت و تجري على الهجا یعنی العقل میگه آخه عالم رزق و روزی و ثروت رو بر اساس عقل خدا تقسیم نکرده یعنی بر اساس عقل نداده چون اگه بر اساس عقل داده بود خر و گاوی چی گیرش می عقل ندازه. خدا بر اساس عقل تقسیم نکرده شیعه ها میگه غلوکانت الارزاق اگر رزق روزی تجری ال حجاب جریان میافت بر اساس عقل چی میشد؟ خلک نه من جهلهن هنن البهاه میشدن در این هنگام که خدا بر اساس عقل تقسیم کنه من جهلهن نه این من تعلیلی است یعنی نه. به خاطر جهالتشون البهایم چهار پایان اونا چون عقلی نداشتن از گشنگی می مورده. خدا من از از از عقل بگید تقسیم روزی نکرد یه نکته ادبی که این شعر هست ببینید میگه حلک ن ازن من جهلهن البهائم یه چیزی شما توی نف خوندید بشم بودن لغت اکلونی البراقیست که هم سیغه جمع بسته می شد اکلونی هم البرابیس در ظاهر باید بگه اکلتنی البرابیس اینجا باید بگه هلکت ازن من جهل ان الله اینجا به خاطر شعر از اون لغت استفاده کرد از لغتی که لزو این نون رو بهش میگن علامت جمع دیگه نمیگن زمین یه البهاءن فاعل بشه مثل تایه هلکت این یه مطلب مطلب دوم اینه این شعر ها شعر شاعر داریستی میگه این نیستش که این با عالم واقعیت خارجی اینه اولا خداوند تو این عالم درست رزق و روزی میده اما رزق و روزی فقط بربری و پنیر و ماشین و خونه نیست که گاهی اوقات آبرو هم رزقروزیه گاهی اوقات ایرم هم رزقروزیه فهم و شعور هم رزقروزیه درست شده نه؟ پس این بنابراین... بعد رزق و روزی خداوندن بستگی به چی داره؟ به تلاش فرد داره سبب و مسبب داره 99 درصد مردم با تلاش به یه جایی میرسن یه درصد هم گاهی اوقات ممکنه که بر اثر باباش بر اثر حوادث بر اثر نمیدونم چیزی اینجوری بشی یا خدایی نکرده بر اثر دزدی و فلان بشی دلیل نمیشه درست شو؟ پس بنابرای ینا لفت آمین این نسبت به این مطلبی که داشته میگفته ما رو چی فرض کرده؟ گاهی اوقات نگاه میکنی آقا گاهی اوقات نگاه میکنی آقا اونی یه نفری هیچی سرش نمیشه آخره به تمام مناس همه چی داره گاهی اوقات هم نگاه کن یه نفر دادن شفت با سواده هیچی نداده معلوم میشه که خدا رزق و روزی رو بر اساس هر نداده چون اگه بر اساس عقل داده بود تمام خرگاوها رو دست نمی این اینطوری گفته دیگه همش کلامه با. پایین نگاه کنید یختی یعنی یقل و مالو مالش کمه فبیر الحجا یعنی عل عقل درست شو خب حالا اینو اگه فهمیدید بیاید داخل بحث میگه که اذا تعامل اذا تعاملت المتقدمه اگه مثال های گذشته رو توجّه دقت کنی وجدتها اخبارند همه اینها جمله خبری و وجدتها فطائفه الاولى خالیتا من عدوات توجید و می این رو در گروه اول خالی از ادوات توجید و فطائفتین الاخیرتین مؤکدتان به معکدن و معکدین و, معکدن و معکدن. در تای بعدی کلام طلبی و انکاری حالا معکد شدن به یه تحکید یا بیشتر دوتا یا بیشتر درست شد چرا اینطور شده؟ چرا یه جا تاکید داره یه جا نداره یه جا کمه یه میگه زیاد میگه فمست رفیخازل اختلاف علت این اختلاف چیه؟ چرا یه جا کمه یه جا زیاد هست؟ میگه اضابه هستن اگه دقیق کنی لن تجد که سببم؟ سه اختلاف حال مخاطب فی کل نمانتنه اگر دقیق کنی نخواهی یافت برای این هیچ علتی جز اختلاف حال مخاطب در هر موزه فقط اختلاف حال مخاطب میگیم چطور؟ میگه فهو وفی امثلت طائفه الاولا این مخاطب در دو سال اول خالی فهو وفی امثلت طائفه الاولا خال خالی و زن فرض شده از طرف متوکرده من مزمون خبر نسبت به مزمون خبر حکم خالی و ذهن و لذان کلم یر المتکلم ها حاجتاً الاتو کهی دل حکم ده متوکردم هم که دیده این باز از تو ذهنش باز هست تو اصلا هیچ چیم وعده نشسته تا حرفی منو گوش کنه آه؟ اینجا دیگه نیاز به عدوات تاکید نیست که در این صورت و لذال کلم یل المتکلم و حاجتن الا توکید نکمیلم فعلقاه و علیه خالیم من ادوات توکید کلام رو اینجا برای رو آورده خالی از ادوات توکید بدون ادوات توکید و یسم با حاضر زرب و منع اخبار ابتدائیه. این نوع از خبرها روش بشمیان خبر ابتدای زهن باز گوش باز نشسته تو بگون نده. یعنی نیاز به قسم آیه نیست که درست شد؟ این یک اما نگاه کنید سه قان الله و تعالی خداوند تعالی فرموده درست شد؟ قد یعلم الله ببین قد اینجا بر سر فعل مزاره اومده اما برای تحکیله چون قد یعلم الله نمیگه اینجا قد بر سر فعل مزاره برای تغییره یعنی گاهی خدا میدونه گاهی که معنا نداره در خدا ممکنه بگید قد یه علمال استاز گایی استاد می فهمد. خب بله گایی هم نمی اون خداوند همیشه می فهمد. همیشه می قد یه الله یعنی به تحقیق خدا میدانه، میشناسد می, می شناسد یه مفعولی به منای یعرف است قد یه علمالله المعوضی نمی کنه خدا اون کسانی از شما که به تعویق می رفتن رفتنه به جنگ رو می شمس. یعنی اونایی که نمیان برن جنگ درست شد جلو گیری میکنن هم همه ولقائلین و اون کسانی که اونا هم میشنسه ولقائلین علی اخوانه هم اونایی که به همتایان خودشون نظیران خودشون میگن ولقائلین علی اخوانه هم حلوم مه ایلینا حلوم مه اسم فیله بیایید پیش ما بیایید پیش ما ولایاتون الباس الا به دوستانشون میگن بیاید پیش ما در حالی که خودشون الباس یعنی الحرب حاضر نمیشن تو میدان جنگ الا قليلا یعنی الا زمنن قلیلا مگر یه مقداری کم منافقان دیگه یه کمی تو میدان جنگ یعنی ما اولش میان شعاراشونو میدن بعد قایم میشن ببینن اوضاع چی میشه اگر دیدن مسلمان رو پیروز شدن میان میگن باله ما نبودیم شما هستن چون ما گفتیم از این ور شما پیادونا قنیوت ما اگر هم شکست خوردن که میگن آقا ما خودمون اول فهمیدیم اما اولش فهمیدیم فلنگو بستیم و در رفتیم میگه خدا این طور آدم هایی که چوبلا چرخ میکنن رو به یقین میشنسه یعنی شک نکنید که میشنسه رو... پایین میگه المعودین من قولهم اوغه و ان الامره اوغه و ان الامره یعنی صرفه عنه و ثبته بود او رو از این کار مانع شد معوذینهم الگون یعنی اونهایی که مردم رو رو میگیرن نمیذارن برن میدونه چیه هلم یعنی چی یعنی تعالو بیاید ولبس الحرج و ول المعنا معنای آیه اینه ان الله يعلم منافین خدا منافقین میشناسن الّذین یثبتون امصالهم عن نسله النبی صبا داهری ولی اونهایی که امصال خودشون رو مانع میشن از یاری کردنشون پیغمبر گرامی نمیشه میذارن دیگران بیان پیامبر رو یاری کنن و یقولون لهم و برمیگردن به این مردم میگن تعالوا معنا و دعو دعو یعنی اترکو میگن تعالو معنا بیاد پیش شما و دعو محمد رو پیانبر رها کنید و هم و حالا که اینها معهازا با این که یه میزنن به دیگران یحذرون الحر و مع معلومسیم میان یه لحظه با مسلمان ها حاضر میشن تو میدان جنگ ریعن من هم و نفاقن به جهت ریا و به جهت نفاق یحذرون سنبه یتسللون حاضر میشن سپس جم میشن تسلل یعنی یواشکی فرار کرد مثل که من تو کلاس دارم درس میدار یه نفر این ورور نگاه میکنه یواشکی از در فرار میکنه میگن می تسلل یتسللون یعنی جم میشن از میدان جنگ بعد یعلم الله المعذرین امرکون والغایلین الاخوان هم حلوم ملینا ولا یعتون الباس الا قدیم دعو یعنی اترکو ده دع دعا دعو. بعدی رو نگاه کنید قال از سری و رفا قای سری و رفاق این شخص شاعر اینطور گفته ان البنا ساختمان ده. به یه نفری داره میگه میگه این ساختمان ان البنا اذا من حد جانب حدا یعنی خراب کرد حدت البلديه یا تو المنازل یعنی شهرداری منزلها رو خراب کرد خانه‌ها حدت البلديه طالبيوت این خانوار شهرداری خراب شد حد متابعه یعنی خراب شد ان حدت البيوت یعنی خراب شد میگه ان البنا اذا ما ما بعد از اذا زائد است میگه ساختمان ازا منحد در جانبه اگه یه طرفش خراب شد شما نگاه میکنون یه ساختمانی از یه طرفش بایهاش خراب شده ریخته لم یعمل ناس و انیان حد باقی مردم اعتماد نمیکنن از اینکه که بقیهش نریزه مردم به بقیهش هم اعتماد نمیکنه یه داشته به کسی میگفته که یه کمی شکل شد حالا یه طرف مثلا یه جای کار اشکال داره ورا دلیل نمیشه که اون طرف اشکال میگه نه آقا مردم اینطوری هم وقتی ببینن یه جا خراب شده دیگه با اون طرفش هم به میلان نمیکنن امتحان میکنن با دقت می یه چیز سالم ببینن اعتماد میکنن ولی وقتی دیدن که اشکال توشه ها اعتماد نمیکنن ان البنا اون البنا اسم النا است این یکی از ادبوردای من حد جانبه این فعلش هم لم یعمن ناسوانیان حد باقی جزای شرط این جمله شرطیه یه خبر این دست درست شد حالا چرا باید نگفته احساس کرده که مخاطب نسبت به این موضوع کمی ای شک کرده بوده بوده چرا مردم اعتماد نمی حالا یه طرفش خراب یه طرفیش رو اعتماد میکنم گفته نه شک نکن مردم اینطوریه. اگر دیدن نصفش خرابه به نصف دیگرش هم اطمینان نمی کنند نگاه کنیم تو بحث اما به طایفت ثانیت فالمخاطب لهو به الحکم علمامانو علمام یعنی توجه مخاطب نسبت به حکم یعنی مضمون کلام یه توجهی داره یمتزشو به شک همین توجهش باعث شده که یکم شک کنه باش باشه اون مرافقین این طور پیش خودشون شک داشتن که خدا میفهمه ما داریم چین میشیم یا نه آه اینطوری اینم اینجا آیدنی شک داشته یعنی واقعا مردم اعتماد نمی کنن به ساختمونی که نسبش خرابه مخاطب لهو به حکمه المامونقلیر یمتزجو به شک و لهو تشوه تشوه یعنی اشتیاق و لهو تشوه کن الان معرفت رحیدان هر چیزی که آدم شک داره درش اشتیاق زیادی داره که حقیقت رو بفر یه لحظه بله بله سرانه ده. من سر کلاس هستم سریع بگو میند چیه بعد زنگ زنی سر کلاس من رو الان سر کلاس هم یه رو دیگه خدا هست. خب اما فتایفت ثانیه بل مخاطب لهو بالحكم علمام قليل يمتاز جو شک یه توجهی داره که يمتاز به شک که آغشته شده با شک مخلوط به شک و لهو تشووف ان لا معرفت و اشتیاق داره که حديقتو بفهمه و في مثل هاذه در یه چنین شرایطی یحسن و انیول غایلی هیل خبرو خوبه که در اینجا خبر براش بیاد و علیه مصفتون من یقین و حالا که بر این خبر یک لایه و پوششی از یقین باشه تجلوله له امره که مطلب رو براش روشن کنه و تطف و انهو شوپه و شوپه رو رفت کنه یعنی اون پرده ناسوک بزنه کنار و بره بشینه تو زهنش اول شبهه رو برطرف کنه بعد مطلب در ذهنش بشینه جلا پیدا کنه اونا یه لایه‌ای از یقین اون لایه یقین اون چیه اون عدات ترکیب که میزنه گوشش رو باز میکنه ذهنش رو باز میکنه فهمیو نکنه همینه این میشینه تو ذهنش یحسونی یحسونی مهمه ان یل خبر الخبر و علیهم مسحه من الیقین تجلو له الامر و تدفع عنه الشبهه و که جا الکلام و فیلم سالس سالس محکده. و در این صورتی که کلام برای او محکد آورده میشه به قدر فیلم سال رابع محکدن به نه در مثال چهارم خورد به قدر و فیلم رابع به و لظ که جا کلام و فلم از سال سه معک شدن بهقدر در مثال سهم با قد اومد قدیهحلمون وفل رابطه معک شد به ان با ان نه و یسم مااز از ضوط طلبین کرد. اینو بهش میگن از اعسام طلب سه تا قسم دیگه انکاری یه پااشیه مهم میداره و یه نمانچ درس رو کامل گفتم انشاالله این رو رووله جلسه بعد براتون خواهم خوند مبحث کامل میشه و یه تقریبا درس دیگری هم هست که کلام خبری به طور کن تمام میشه و وارد انشالله کلام انشایی میشیم که خودش یه گستردگی خودش رو خوب مبحث رو مطالعه کنید تا انشالله نسبت به موضوع سوار باشید و اینا رو باید فهمید. و اگر انسان بفهمه زیباس و روانشناسی سخنه کمکتون بکنه که نیات افراد رو هم بهتر بفهمید ما رزوی توفیق براتون دارم موفق و معید باشید در پناه خداوند تعالی و السلام علیکم و رحمت الله زبر.